منتها مشکل توی کلمونه مشکل این به تو یاد، میدم از من یاد بگیر. رو موبل صافشین. و باز ببین. دوروغام راست میگرد دار کو تو باچیدم مامو تام نیستم رفیق یه مار تو سینم تبلیغ تو دقیقه تبلیغ درونه تبلیغ تبلیغ, تبلیغ, تبلیغ. پشت سریال قصه تخریب وان فریف 100 100 ولی علوه علوام رو سر سر من تو عمقت لونه کردم چشم حرفم و دست به دکمه روشنم کن خودتو ببین من یا آینم که تو پخته بازیت میدم تا بازی من میگم به قدر کافی نبین تو چشمی و من به جاد میبینم بهت یاد میدم که یاقین نشی میسازم آرزی و ترس تو میسازم سلیقه این اصل تو من فکر تو ساختم دی خشب پوره بد میگم رو ماشه بزو دست تو شلیک کن زنده ام هنوز مگه داستانم که تچ سانسور شدم ولی قسم م هنوزش قم و هنوز به زیر زمین دارم من میدونی بیشتر این رشتو میکنه خب ریشه درخت چون تنشو میشکنن میشه یه تبر رسانه هر روز میگه بد خبر چون فکر کردن تو میبینه خطر یه فیلم فیلمسیو سفیدم که میخوام رنگی باشم صلح نشون بدم ولی جنگی باشم اختار میدن دیکته میشن دستور و اکران میشن ولی بیننده ام کوران چک نویسا فراریان نظم دیالوگ و همشون خط خوردن این روزا انگار روانی ام مسخ خط قرمزو کردن افسوردم هر چیزا خوردم من روز و شب واسه این مخاطبم نباشه کورو کر به بین جریان داره هنوزی پا به اصلی تو زیر زمین واسه این سرپای مشتی یه به جان ببینی کور میشم تو تاریکی ببری منو نور میشم به قجر کافتی کله خراب از راهی که تو میسازی دور میشه <تصفيق> من بازیگر نیستم بازی نمیدم بازیگر اونان که بازی چه میشن تو از فکر من یه اصله ساختی ولی نشون هاشو مغزی که خوابیده میرن چلیک چلیک <تصفيق> خودکارم مشاست جوهرش چرا تو پولش پاشم ناب نشو بشام میشه pore وصله واسه تخریب رسونه هرتش کشیدم روزنامه رو تلویزیون و درو که توش ساختن ساختنم تر میشم ولی زندم هنوز پس میرم اون راهی که دوستدارم و...